آنجا برایش امتر بود و راحت گیر نمیافتاد آهسته به طرف بالا راه افتاد وقتی از نزدیکی آب گرم رد میشد بوی گوگرد را احساس کرد. همینطور نور چراغهای خانه ها را دید چند مرد با صدای بلند با هم حرف میزدند و سگی در آن نزدیکی پارس میکرد گامهایش را بلند برداشت تا زودتر از آنجا دور شود رفته رفته راه باریکتر و لاغرتر میشد حتی گاهی لابلای سنگ ها پنهان می مند. با احتیاط پیش می رفت. دیگر بوی گوگرد هم به مشامش نمیرسید. نوری دیده نمی شد و سگی هم پارس نمی کرد. تنها صدای حیاهوی رود بود که باریه راه گاهی به ساحلان نزدیک می شد و زمانی فاصله می گرفت. نگاهش را به پیش پایش دوخته بود تا راه را گم نکند. قرص کامل ماه به شکل سینی عظیم ای خودش را از پشت بالا می کشید. با آمدن ماه رفته رفته گوشه و کنار آسمان روشن می شد. حتی ابرها و رودخانه هم بهتر دیده شد. حالا رود خوفناک به نظر می رسید. موجهایش برای گرفتن ماه مانند پلنگ به هوا می جهیدند و چنگ می انداختند. بالا انگار به جای رود اجدهایی بزرگ و افثانه ای از شکاف کوه بیرون می خذید. مهی با دیگر پیش پایش را خوب می دید. باریک راه ها را گم نمی کرد. حتی می توانست پشکل گوسمند ها با سرگین گاو ها را در اطراف ببیند. رفته رفته دره باریک میشد و حیاهو و خشم رود بیشتر. روبرو به نظر بموست می رسید. به جز تنگه باریکی که رود به زحمت از میانان بیرون می جهید. هرچی جلوتر می رفت نور ماه کم می شد و به دهانه تنگ نمی تابید. آنجا یک شب واقعی بود. تاریک و مرموز تنها سوسوی چند ستاره کوچک دیده میشد. ذرات سرد آب در فضا پراکنده بود و مانند شب نم بر سر و کولش می‌نشست. سخراها و سنگهای خیس بوی نم و جلبک میدادند. وارد تنگه شد. رود به فاصله خیلی کمی از او پایین می‌گالید. چسبیدم به دیواره تنگ جلو رفت. پیش رو تنگ باریک میشد و به سر رود کم ارض‌تر تا آنکه دیگر آب به ساق پایش رسید. ظاهرا یا جای او در آن تنگه بود یا جای رود دیگر امکان پیشروی نداشت تنگ در تسخیر رود بود و راه برای عبور نمیداد. تصمیم گرفت برگردد و از دهانه تنگ بیرون بیاید و در پرتو ماه مسیر دیگری پیدا کند برگشت روبرویش منظره زیبایی بود دهانه تنگ مانند دروازه بزرگ رو به دره و سرسبز باز میشد که نور مهتاب آن را روشن کرده بود از اینکه میتوانست خود را به آن گشودگی و روشنایی برساند خوشحال شد. با سرعت تنگنای تنگی را پشت سر گذاشت و رو به دشت پیش رفت. ناگهان پاهایش سست شد و زانوهایش لرزید. سرمای کننده ای را در تیره کمرش احساس کرد. گرگ در آستانه تنگه ایستاده بود. موهای سرش سیخ شد و پوستش رو به بالا کشیده شد. دیگر نه هیاهون یک رود را میشنید و نه چشمانداز سهرنگیز دشت خفته در نور ملایم مهتاب را میدید. تنها گرگ بود که شبیه مجسمه ای سنگی بی حرکت در آستانه تنگ ایستاده بود و نگاهش میکرد. کرد. راه پس نداشت. تنین ضربات پودک بار قلبش را میشنید. احساس می کرد با هر کوبش قدمی به عقب می رود. گور بزرگتر شده بود مثل یک گوساله درشت می بود به نظر همان گورگی نبود که از دشت مشکین شهر همیشه دنبالش بوده حالا حیولایی شده بود شاید همچون نور ماه از پشت بر او میتابید آنگونه مینه بود خاص فریاد بلندی بکشد که در میان هیاهوی خروش رود به گوش گور بر رسد و او را بترساند اما وقتی دهانش را باز کرد صدایش به شکل مسخره ای مثل کسی که بیماری خروسک گرفته باشد از گلویش بیرون آمد و زبانش مثل تکهی چند خوش کف دهانش بال بال زد خم شد پار سنگ خیسی را از پیش پایش برداشت و پرتاب کرد گرگ دهانش را گشود و خورناسه بلندی کشید اما تکان نخورد سنگ دوم را هم انداخت این بار گرگ جلو آمد اما او امکان اغلب نشینی نداشت تنها راه پرت کردن خود به میان رود بود و پنهان ماندن لابلای انواج ولی چشمش ترسیده بود دیگر توان مقاومت نداشت میدانست که این بار نمیتواند از میان امواج نیرومند و بیرحم جان سالم به در ببرد به نظرش بهترین راه بالا رفتن از دیواره تنگه بود آنقدر که چنگال گرگ به اون نرسد. همین کار را هم کرد ساقه های محکم بوته های رویده در لابلای صخره ها و نیز سنگ های پلکانی صاف سیغلی را مقابل خود دید در صعود از دیواره تنگ هم به بنبست رسید ناگزیر در یک نقطه متوقف شد گردن چرخاند و سرخماند و به پایین نگاه کرد برق های گرگ را دید که روی دو پا نشسته بود و نگاهش میکرد شکاف صخرهای که انگشتانش را لای آن گیرانده بود باریک بود با لبه های تیز و تیغهای بند انگشتانش را خراش میداد و میبرید و از مقاومت او میکاست درد از نوک انگشتانش پایین میخزید و تا کف پاهای خسته و لرزانش میپیچید احساس کرد بند انگشتانش در حال شکافتن و قد شدن است لحظه به لحظه مقاومتش کمتر میشد لبهایش را میگزید و پلکهایش را محکم روی هم میفشد اندامش به رحش افتاد بیشتر از همه دستهایش میلرزیدند نمیتوانستن سنگینی اندامهای دیگر را تحمل کنند و تحمل نکردند بند انگشت ها از هم باز شدند و او به سمت پایین لغزید به هرچه سر راهش بود چنگ انداخت اما بوتها ها از جا کنده می شدند و اگر سر راه سنگی را هم می گرفت آن سنگ هم همراه او پایین می آمد با پشت افتاد روی ساحل سنگی رود از درد به خود پیچید و مثل ماهی بیرون افتاده از آب بالا و پایین پرید ناخداغان خودش را کشان طرف رود احساس آتش می کرد وقتی دستش به آب خورد، گمان کرد آتش درونش در حال خاموش شدن است. پلکایش را باز کرد. دو نقطه قرمز به سرخی دو حبه زغال مشتعل بالای سرش دید. گرج، پیروزمندانه ایستاده بود و مانند سیادی فاتح نگاهش می کرد دوباره پلکایش را رو روی هم گذاشت. نمیخواست به چشمان حیولا نگاه کند. دستهایش را به دو طرف گشود و بر زمین گذاشت. آرامش ناخواسته او را دربر گرفت. داشت راحت میشد. دیگر احساس درد، خستگی و ترس نمیکرد. چیزی مثل خواب او را با خود میبرد. در میان هیاهوی چرخوننده رود صدایی شنید. کسی نوحه‌ی عبدالفضل میخواند. غیر از آن هیچ صدایی نشنید. چشم‌هایش را که باز کرد، دید نزدیک ابرهایی که در نور مهتاب شناورند در حال پرواز است. آسمان غرق نور بود. او به هر طرف که اراده می کرد می به پایین نگاه کرد. دره ی عمیقی زیر پایش گسترده بود که رودی خروشان از تنگی آن عبور می کرد. پایین رفت. از شکاف دره گذشت و به کفان نزدیک شد. خودش را دید که در ساحل رود افتاده و گرد بالای سرش نشسته. نگران شد. ناگهان از دهانه ی تنگه سپیدی که روی امواج ارتمه می ظاهر شد. پاهای اسب مثل بالهای سنجغک ها روی آب مماس بود. رو به بالا میتاخت بیان که پاهایش درون امواج فرو بروند. سواری از جنس محتاب روی زمین بود که صورتش را پوشانده بود. با نزدیک شدن اسب و سوار تنگ محتابی شد. نور سخراهای تیرو عبوس و ابوسلو را روشن کرد. قزلالاهایی که سعی می‌کردند از مسیر موجهای خروشان دور بمانند دیده شدند. اسب و سوار به بالای سرش رسیدند. گم شد و معلوم نشد همراه تاریکی به کجا رفت؟ خودش را دید که چشم باز کرد تکان خورد وقتی آن اسب و سوار را بالای سرش دید خوشحال شد دستهایش را به طرف سوار دراز کرد تا او دستهایش را بگیرد و از جا بلند کند اما سوار دستهایش را به طرف او دراز نکرد دستهایش را نگرفت سوار دست نداشت وقتی فهمید های های گریه کرد صدای گریهش در میان تنگ پیچید کسی در آسمان برای سوار دیده است نوه میخواند. رود و کوه و صخره و باد با او هم نوایی میکردند صدا در آسمان تنیم میانداخت او هم گریه کرد او هم نوه خواند او هم سینه زد چشمهایش پر از عشق شده بود دیگر خودش را نمیدید تنها آن اسب سفید و سوارش را میدید که از جنس نور بود کم کمان قدر گریست آنقدر اشک از چشمهایش جوشید و بر هایش ریخت که ناچار شد پلک‌هایش را ببندد و چیزی نبیند دران در آن تاریکی در غار آن ری مخوف احساس کرد پهلویش گرم شده وقتی تکان خورد اندامش از درد تیر کشید چشمهایش را باز کرد بالای سرش سقف کوتاهی بود که با ساق و برگ درخچه های کوهی و بوته‌های وحشی درست شده بود از بازی سایه روشن شعله بر روی سقف و دیوارهای سنگی فهمید که آتشی در کنارش افروخته شده به سوی آتش سر برگرداند های آن سنگ های سیاه اجاق را لیس میزد و بالا می جهید باز هم در چهار گوشه جان که عجیب چشم دواند دیوارها با سنگ های زمخت و نتراشیده بالا رفته بودند اتاقک دری کوتاه داشت که با یک لنگه تخته‌ای آن را بسته بودند آهسته بلند شد و نشست کمرش کوفته شده بود، تیر می کشید گوشه اتاقک چند پتوی پاره و کهنه مشاله روی هم ریخته شده بود جای دیگر ظرف و ظروف لهین قرار داشت جز چرق چرق سوختن چوب و بوتهای خشک صدای دیگری به گوش نمی رسید. وقتی خواست نفس عمیقی بکشد در درون قفسه سینه چنگ انداخت و مانند خار به جداریان فرو رفت به زحمت از جا بلند شد و ایستاد سخف کوتاه بود و دستش راحت به آن می رسید. از فرط درد و زف زانوهایش می لرزید. به نظرش آدم دیگری شده بود. ناتوان و شکننده. آهسته شروع به قدم زدن کرد. چالههای کف اتاقک را علوفه خشک پوشانده بود. به طرف در رفت. لنگ را کنار زد و به بیرون نگاه کرد. از محتاب خبری نبود. تاریکی همه را پوشانده بود. تنها ترهی سایوار و لرزان از کوه ها و تپه های اطراف قابل تشخیص بود. گاهی تنور باد سرگردانی با شتاب از انجام میگذشت. آنگاه احساس میکرد کرد اشباهی ناشناس درون تاریکی و آمد می کنند و صدای زوده گرد به گوش می رسد. دوباره به اتاقک برگشت و در را با دقت به چارچوب تکیه داد و آمد کنار اجاق نشست. آتش کم کم شوله میکشید و فضای اتاقک را روشن میکرد. وقتی نگران خاموش شدن آتش شد، سر سربرگرداند و به گوشه اتاقک چشم دواند. پشته‌ی هیزم از شاخه‌های خشک و بوته‌های گون و سرگی نگاه در کنج اتاقک انبار بود. خیالش از آتش و روشنایی و گرمای آن راحت شد. نمیدانست چه وقت از شبست آنجا کجاست و چه کسی یا کسانی او را از درون آن تنگه تاریک و عمیق به این اتاقک آوردند. فهمید که باید منتظر صبح بماند و روشنی هوا تا که ذهن و فکرش روشن بشود و موقعیت خود را تشخیص بدهد دوباره در جای خود خوابید این بار یکی از پتوها را هم رویش کشید و پلکهایش را بست بیرون صدای باد بود و زوزه گرگ و گاهی نوای محزون نوه روی یکی از یالها بود زیر پایش لاله های سرخ رویده بودند کمیان طرفتر میناهای وحشی دیده میشد. با گلبرگهای سفید و کرک های زرد. خاک دیده نمیشد. همه جا گل بود و خورشید و آسمانی صاف. چند عقاب نزدیک قله بالهای خود را گسترده بودند و روی امواج هوا می لغزیدند و با لذت پرواز می کردند. نسیم نرمی می وزید آکنده به عطر زمین و نمه باران. سینه پر از نسیم شده بود. گلها نگاهش می کردند و به او خوش آمد می گفتند. یک جایی ایستاده بود. دلش نمی آمد قدمی بردارد و گلی را پایمال کند. دوستشان داشت. همانطور نسیم آسمان را، اقاب ها را، قله با شکوه سبلان را، از این همه زیبایی بغزش گرفته بود، همه را متعلق به خود می‌دانست و خودش را هم از آنها، حس پرواز داشت، مثل گلهای قاصدک مثل پرستو یا حتی عقاب سبک شده بود، گمان می کرد اگر دستهایش را باز کند، آسمان او را بالا خواهد کشید، پایین یال از درون دره توده ای تیره و بیشکل بالا میخزید خوب که نگاه کرد شناخت مه بود تیره و سیاه سینه بر سینه زمین خود را بالا میکشید و نزدیک میشد مانند مار بی صدا و بی خبر. رسید و او را در چمبره خود گرفت هوا تاریک شد بوی جلبک و لجن پیچید دیگر نه زمین را دید و آسمان را از گلها و عقابها خبری نبود سرمایه گزنده جای گرمای ملایم خورشید را گرفت جایی را نمیدید. روی دوزانو چوم باطم به خودش بیجید. گردنش را میان قوس بازوانش فرو برد تا کمتر سردش شود. باد افتاده بود میان علف ها و تنور را می کشید چمنهای ترد و در حجوم آن زار می زدند زوزه می کشیدند. صداها رفته رفته بیشتر شد از پایین می آمدند سرود می خاندند. شبیه به زوزه دسته دست جمع بلند شد و نگاه کرد نزدیک می شدند. هر لحظه انتظار دیدن گروهی گرگ را داشت بویشان می آمد لای جلبک و لجن راه فراری نداشت جایی را نمی خون در رکهایش منجمد شده بود نای راه رفتن نداشت تلسب شده بود تندیسی از سنگ ایستاده بر یال کو رسیدند از میان پرده‌ی تیره مه بیرون آمدند. قد بلند بودند و یک قواره. وقتی او را دیدند دیگر نخواندند، بلکه خندیدند. گویا خرگوشی گیرشان افتاده باشد دوره اش کردند. همه نظامی بودند. درجهشان را نمیتوانست تشخیص بدهد. یکیشان جلوتر آمد و نگاهش را دوخت به چشمان او. نگاهش آشنا بود. شناخت. همان نظامی آمریکایی که در راه مشکین شهر به تبریز سوار کامیون شد. خودش بود خندید و دست انداخت زیر چانه ای اسماعیل اسمایل سرش را بلند کرد و گفت اینجا چه میکنی؟ اسماعیل جواب نداد پرسیدم اینجا چه میکنی؟ جواب بده من فارسی حرف میزنم برای گردش اومده بوده زیبا بود اگه مه کنار بره اون وقت میبینید چقدر زیباست سیلی محکمی به صورت اسماعیل زد تو به چه اجازه اومدی گردش؟ به اجازه؟ بله اجازه اجازه از کی؟ اجازه از ما و با انگشت به سینه اش که پرچم آمریکا رویش دوخته شده بود اشاره کرد اما اینجا وطن منه حالا که تاویله ماست بقیه خندیدند، با صدای بلند صدایشان تا دور دستها رفت دورش میچرخیدند و بالا و پایین میپریدند و دندانهای نیششان را نشان میدادند. چنگ به صورتش میانداختند، زوزه میکشیدند افتاد زمین دور سرش چرخ می زدند از رویش می پریدند لرزید از ترس از سرما کرخ شد خوابید با صدای پارس چند سگ از خواب بیدار شد هوا روشن شده بود و از رقص نور آتش روی سقف و دیوارهای سنگی خبری نبود بیرون از اتاقک چند سگ به جان هم افتاده بودند و صدای پارسشان می پیاپی خورناسه میکشیدند و پارسهای بلند می کردند. بلند شد و نشست کمی گوش داد جز صدای پارس سکها صدای دیگری نشنید برخاست و آهسته به سمت آستانه رفت از شیار در به بیرون نگاه کرد سکها در نزدیکی اتاقک به هم پیچیده بودند چند لحظه بعد صدایی شنید مردی فریاد زنان نزدیک شد با آمدن اون سکها به سمت تپه‌ای که روبروی کلبه بود گریختند گردن کشید و به محوت نگاه کرد اطراف روشن و سرسبز بود یکی از سگها جلو میدوید و بقیه او را تعغییب میکردند مرد فریاد زنان به نزدیک اتاقک رسید و با صدای بلند گفت چولی چولی اونجایی وقتی جواب نشنید نزدیکتر آمد چرا جواب نمیدی کر هم که شدی رسیده بود به آستانهٔ در احساس کرد نمیتواند ساکت بماند و جواب ندهد منم بفرمایین تو لحظاتی در سکوت گذشت. اسماعیل لنگه در را از آستانه کنار زد و پا و بیرون گذاشت. نزدیک اتاقه یک پیرمرد لاغری را دید که قد متوسط داشت. با کلاه پشمی، لباس گرم و عینکی با شیشه‌های زخیم. در سینه‌کش تپه گله گوسفندی پهن بود. بیاین تو پدر." مرد پا پس کشید. "کی هستی تو؟ اینجا چه کنی؟ اسماعیل خندید و به پیشواز مرد رفت و گفت: داستانش طولانیه. همین بگم که اومده بودم این طرفه قاش بکنم که یه دفعه هوا تاریک شد و ناچار شدم بیام اینجا. هوا تاریک شد. بله، مثل همیشه هوا تاریک شد و من شب همین تو خوابیدم. هیچ میدونی وقتی اون تو خوابیده بودی یه گوری آدم خور اومده بود سراغت؟ نه، نمیدونم. هیچ میدونی اگر سگای من به دادت نرسیده بودن، الان معلوم نبود چه بلایی سرت اومده بود؟ اسمایل با ترجیح به طرف تپه و گله نگاه کرد. پس سگا سراغ گرگ اومده بودن؟ چهار تا قارچ اونقدر مهمه که تو به خاطرش میخواستی خودتو به کشتم بدی؟ من از کجا بدونم؟ دیدم هوا خوشه آرام, آرام اومدم بالا گفتم جمع میکنم و برمیگردم که پیرمرد مرد کنج کاف شد تو مال کدوم دهی؟ مستان آباد، البته از شهر اومدم، مهمونم همین دیگه کلتون پره، زبون و نمیفهمین، برو جوون حتما مادرت سر سجاده بوده که خدا بهت رحم کرده وگرنه گله به طرف آنها میآمد بزها نزدیکتر شده بودند صدای زنگوله هایشان میان در پیچیده بود سکا هم برگشته بودند قوی بودند با گوش های بریده، سرهای بزرگ و سینه بندهای فلزی که مانند زره آهنی جنگجویان جویان بر سینه های آنها بسته شده بود لح میزدند می زدند و زبانشان بیرون بود اسمایل تا به حال چنین سک هایی ندیده بود. با تعجب به سینه و نانها اشاره کرد. اینا برای چیه؟ اینا برای چیه؟ خب معلومه برای چیه. برای گرگ. سینه هاشون میکوبن به گرگ. این میخاره رو فرو میبرن تو بدن جونه اگه این سینه بنده رو نداشته باشن که نمیتونن جلو گرگ دربیان بنده خدا. نگاه سگ ها دوستانه نبود. او را زیر نظر داشتند. شما صدا کردین چولی؟ آره اینجا مال اونه اسمش یه چیز دیگه است چون همیشه تو کوه و بیابون زندگی میکنه همه بهش میگن چولی. چرا چئولی؟ هیچکس درست نمیدونه هرکس هم چیزی میگه. معلوم نیست اهل کجاست؟ فقط میدونیم که زمستتون ها توی یکی از قهوه خوونه های نزدیک آبگر میمونه بهها رو تابستون به میاد به این اتاقک. حرفم نمیزنه. کسی نشنیده تا به حال چئولی چیزی بگه. اسمایل به فکر رفت. چهره چولی به شکل‌های گوناگون پیش چشمش شکل می و دوباره زدوده می‌شد. اما به یک چیز اطمینان داشت و آن اینکه که حتما چولی او را از تنگ بیرون آورد و به این اتاقک رسنده برایش اجاغ افروخته تا خونش گرم بشود. سکوت را شکست. عجب! چولی! خرشید گاهی با درخششی تمام بر قله سفید بوش سبلان می‌تابید. ذرات برف زیر نور خورشید مانند شبنم صبحگاهی بر چمنزار می‌درخشید. قله خیلی نزدیک به نظر می‌رسید. تا به حال قله را آنقدر نزدیک و در دسترس ندیده بود. پرسید: یعنی واقعا به همین نزدیکیه؟ چی به همین نزدیکیه؟ به قله که پشت سر چوپان بود اشاره کرد. این سبلان چوپان برگشت و نگاه کرد و چوب دستیش را به طرف قله دراز کرد. به نظر چیزی نمانده بود نوک چوب دستی روی برفهای قله خط اندازد. اینو اینطور نبین به نظر اینطور میرسه یعنی نزدیک نیست نه که نزدیک نیست یعنی نمیشه رفت نه نمیشه رفت اما من جوونیم بعضی روزا صبح میرفتم و بالا نماز میخوندم و عصر برمیگشتم هر روز نه ای ماهی خورشید های اسماعیل را هم آورده بود از باریکه یه تنگ پلکا نگاه میکرد. برای چی اونجا نماز؟ اون بالای دریاچه است، آبش مثل اشک چشمه. ایلات اینجا پیش از رفتن به مشهد میرن قله. با آب دریاچه بوزو میگیرن برای رضای خدا نماز میخونن و بعد راه میافتادن میرن خدمت امام رضا. سبلان انقدر محترم پیش مردم اینجا. با پارس یکی از سکها متوجه دور شدن گله شد. گوزفندها بالای تپه رسیده بودند. از کوله دست با رنگیش کمی نان در آورد و به طرف اسمایل دراز کرد. حتما گرسنه هم هستی. بخور تا قوت رفتن داشته باشی. نمی پذیرفت. بگیر. مرد همیشه باید نون همراهش باشه اینجا رسمه. دستش را پس نزد. نام پیچه بود. احتمال داد لایان پنیر یا کره باشد. گرفت و تشکر کرد. زود برو پایین اینجا نمون. دیدی که وسط چوب اش را به صورت افقی روی کمرش گذاشت و دو دستش را از دو سر آن آویزان کرد و رفت پیش گلهش یکی از سگ ها مراقب اسماعیل بود عقبتر میرفت و به فاصله چند قدم برمیگشت و نگاهش میکرد آنقدر ایستاد تا گله و چوبانش به آن سوی تپه سرازیر شدند و از چشم او پنهان ماندند تنها صدای زنگوله نرها شنیده میشد و پارس گاه به گاه ها. او مانند قله سبلان که انگار در چند قدمیش ایستاده بود و باد مرموزی که میوزید روی بوتاهای تازه به گل نشسته گوانها و سنگهای پوشیده از گل سنگ پوزه میکشید و هم میزد و میگذشت.